اللهمنا شيطان رجيم الحمد لله رب الله على الله و آل على اللهم بحث درباره آیه مبارکه بود و بحث اجمالا به اینجا منطقی شد که راجع به ولی غیران ندین خلقالله اختلافی ما بین محسین حسد مایوغان از همون عهد صحابه مطرح بوده تا پیما برد البته گفته شده که قابل جمع هست این یک دو خود این دیوز ما کسان آماردوز نخب خود عباراتی که به صحابه یا به طابعی نسبت داده شده یه نقداری اختلاف هست اصلا مثلا داشته برشوی که گفته تغییر دین لا مثل خساب حال آلو سال تغییر آل لکن در هم تغییر دینه تا آلو علی اخساب هست در وعد همین روایات به متون دیگر کامونده منحول اخساب تغییر این هم داره یعنی این هم اونم که نسبت داده شده این معناش این روز که فقط اخساب باشه من اخساب به هر حال یه روز ارز کردیم احتمال در اینکه که را از خبه الله چی باشه که باید با باید توضیح هرز رو کنم فقط یه نقطه رو با در نظر گرفت و اون اینکه این آیه مبارکه با نظر به شمع نوزورش باید اون به اصطلاح در نظر داشت مقاهمی معنایی از آیه فهمیده بشه که با ذهنیت اون زمان بخوره مثلا من با مثال اگر بخوایم بگیم که فرض تغییر جنسیت، روز اون زمان تغییر جنسیت نبوده. چون آیه قبلش یه خب ولا امورن لا فلیوبتکنو الانعام حیوانا حیوانات در یک سال معین گوشتش رو نمی‌گریدن، مثلا میگن اینا نباید بکشیم. میمون خودشو و مثلا گوششون تلفش میشه. این کن اذان الانعام خب این واقعیت جامعه جا بود و فهمیده میشود. و بحث بگیم خلق و قی و نخ خلق الله دقت بشه یک جوری معنا بشه که با ذهنیت اون زمان بخوره حالا وقتی ویروس داره اصلا تغییر ژنتیا، جنسی تغییر جنسیت تو ذهن اون معنای شبیه جز كلام متارضه این شبیه سازی که خب این به هر حال جزء مصادیق تغییر خلقالله هست چون خب نظام خیلی از کشورهای تو غربیشتن به علقه تو این کارو ممنوع کردن شما میگرد معلومی نیست این که واقعا این همون حیوان باشه چون طریق طبیعی و اون طبق الاهی در حیوان این که از نطفه باید تشکیل بشه چون یه سلول رو که دست شما پیدا میشه نوایت نیست این ورن شکل بشین این, مثل این شبیه سازی اون نکته اصاسیش اینه که مثل صاحب اون سلول اصلی میسازن بدون این که از نطفه استفاده کن بدون این که اون طریق طبیع اراده چین معنی درشان چون جنب جاهلیت خیلی بعید به ذهن میاد استقرات بکنیم وقتی این بحث و اصولی معروف رو به دنبال داره که ما درباب اطلاق لازم نیست حتما اطلاق این معنا باشه که ناظر به افراد باشه یعنی این بحث پیش میاد اگر آیه آمد و غیران خلق الله و بخوایم به اطلاقش هم اصطف بکنیم آیا اطلاقش شامل مثل تغییر جنسیت میشه یا نمیشه خب بی بحث میشه که باید اراده تغییر جنسیت بشه تا چون تو رو نودی معه تغییر جنسیت یا شبیه سازی در ذهنشون نبود وقتی این اصلاح محق نمیشه ا همون مبانی که اگر تغییر ممکن نشد اصلاح هم ممکن نیست که قایی میدارن. جوان این مطب در آن بحث اعتصا تغییر است که اصللا در اصللااح اواصولین چند نهنا داره یک معمه اصلاح مجرد عدم و که من اسمشه گذاشتم اصلاح به لحاظ مدلول تصوری مثلا اگه گفت آب بیا آب بگیم مثلا نظر داره که آب بیار مطلقا چه از خوره زمین باشه کره میری خب امکن آب کره میری که نیست اما از طرف دیگه این رو هم میدونین که یاد فرستیم به معجزه فیغمبری ولی از اولیالله آب از خوره میری کنه آب بود در این که موجز موجز این یک نوع اطلاقه یک اطلاق معناش اینه که مائه این جنی به مائه این, این اطلاق داره به این معنی قید نخوره. همین که قید نخرده کافیه این یک معنای اطلاقه نه این که مثلا آرو یعنی اطلاق بگم دیگه این که دیگه اطلاق منظور تصوریه که منظور نه اصلا دو تا که یک اطلاقه در این اطلاق ما اصلا مقدمات حکمت هم نمیخوایم این مقدمات یک جایی بهشون چیزی مال اطلاق لحظیه در این اطلاق فقط لن بیاد قید نخوره همین که قید نخواد کافیه اما یه نهر دیگه اطلاق به مدرور اون باید مثلا نظر داشته باشه نه به این معنا که جمع قیود یعنی اون حیثیات افراد رو در نظرش باشه اون قیود رو یعنی قیودی که ممکنه این اطلاق میشه لحاظی به لحاظ قیود ممکن قید میکنه. نه به لحاظ قیود مطلقه مثلا مردم نمی‌فهمند که اگر که آغوش صلات در که شمس اول قسمت این حکم بلاهازی است که شما علم داشته باشید یا علم نداشته باشید، نمی‌شه اسلام داشته باشید. چون تقریباً به علم که ممکن نیست، چون نمی‌شه حکم مقررات بشه به علم خود و خود حکم. پس اسلام معروف است. این یه اسلام دیگر است، اسلام دیگری است. این خلیج‌یورایی‌ران نخل غل‌لا، اسلام عمومی اندیشی مخاطب اکثراً اسلام است. این خلیج‌یورایی‌ران نخل غل‌لا، از قبل از اسلام عذلیه. از که در کلمات اصولین کشی اچه سن میچه در فقص در اصول گاهی وقت این الفاظ کمی مثلا جابجا استعمال میشه فرصول در همین امونتون درسی متعارف و که من هم کتاب کفایه باشه داره اطلاق و سیغه یخوز تحیمیه ولی اینیه و نفسیه که اگر مثلا این باب آب اطلاق این اختضام میکنه که این واجب تحیمیه چیزی دیگه جای بیا بله. اون تخییلی و عینیه هم هست که سیگه نیمتونه انجام بده نفسی هم هست مثلا مقدمهی برای عمل دیگه نیست جرد این تحبیر ایسکال ها مطارد و در حقیقت اگر دکت بکنیم بعد در دونه شال جلد. انصافش این دو تا اطلاق یکسان نیست ده. چون اونجا اگر آب بیا بگیرید هم که اگر آب بیا این اطلاق به معنی این که مختصی تعینی هر واجبی که ذکر بشه بعدش او نیاز میشه کنید نمیخواست بیان باشه نمیخواد احناباز مقدمات یعنیز بکنید خوب دفر کنید همین که واجب رو عوض، خوب دفر کنید قید نزد، همین او رو با اب بیان، این میشه خود رواجب بسنید این که کاشف از ها، اون ارازه، نمیخواد این چیه اینجا نمیخواست، بله آیا این اینیس یا کفاییس نقصیس این واجب اینیس بله اون مقدمات حکمت این دوتا دو تا اطلاق هست این که گفت آقبیان کسی دیگه هم من فقط باید باشم کسی دیگه نباشه این مقدمات حکمت رضا از دو تا اطلاق اگه دقت بکنید، یک اطلاق فقط مجرد عدم تقییده یک اطلاق مقدمات حکمت میخواد از بعضی‌ها هم بی انجه که میگه این اطلاق و اطلاق چیزی گفت این اطلاق و اون چی اطلاق نه من هر دو اطلاق در کلام اصولین هر, هر دو هست در فقها هر دو هست تا چون سومه اطلاق مقامی باشه اونم هست حالا من نمیخوام شر انواع اطلاق رو اینجا ارجو بعضی از انواع اطلاق ما معیارش رو این گرفتیم که در اطلاقی که عدم قید کافیه اون اطلاقی به مبلور تکووری یعنی به این نمیخواد حتا در نظر بگی مثلا بگیم بگی این شامل ما از کره نریش میشه این با مقدمات حکمت جاری بشه خب ما از کره نویش که معانه تبدیل بخوره اب من بخوره اشکال مردمانه نه این جن به ماهن همین که قید نخورد مطق آب کافی. نمیخواد بگیم آب کره نرویش مرا میشه. اما حالا که این به معوجس پیمن امامی موجوده که آب کره مری خوب ب ثاب هم هست ابی با آب ندا خب جنی ما این شامل میشه. این صدقه نمی این نقصه شده حقیق از اینه یک اطلاق مفاد یک مدلود تصوری اون عدمالغه توش کافیه یک اطلاق مفاد مدلود است. خب بگرد بکنه این عقیق صلاح دردو که شمس علاقه سقل شامل عیل و جهب بشه اطلاق روشت که ناید میگه اطلاق نداره چون این مدلود تصویری در وضع تصویق مقدمات ی هم بودن مقدمات حکمت لخواستی بشه بدون مقدمات حکمت نمیشه این دو تا اطلاق رو با هم دیگه فهمیده اطلاق مقام این چیز دیگری مثلا همه اطلاق مقامی اگر یاد آون باشه اینا با دیگه دو دوباره در شعر در اذه از مازیه عملا به اطلاق مثلا مقامی است. اطلاق درذی تو شعر در ذهنیت اذه از اصولین سونی، چه سنی شیعه اطلاق, اطلاق مقامی مثل اینکه مثلا اگر زردی که توش اگر سیرنبی جوشید میگه اگر پاک شد، اون در هم درورش پاک میشه چون مثلا اینکه نه یه طور اگه سر پاک میشه یا اگر شاه پاک شد، اون در هم پاک میشه اون نمی دونم هم که بشه پاک میشه عتابش هم پاک میشه ایشون میگه اونها پاک میشه اعلا در اینجا هیچو لغ نیست اعلا در اطلاق هیچ چیزی اصلا معنی اطلاق معنی اصطلاح لغ نیست میگه اگر متکلم حکم رو بیان کنه و این خوب یک لوازم و عرفی داشت اون لوازمش نگفت اطلاق اختصاصی که اون آساط واردش میشه این اسمش اطلاق مقامیه تو خود هم داره که شد من گفته، بعضی جا در شرنامه داره عملا در اسلام موردش اطلاق, اطلاق مقامیه الان ما با اطلاق لفظی فرقش نمی‌دشه اما در بعضی اصطلاحات قدیم این گذاشته نشده پس باور این ما میگیم تمسک بشه به اطلاق فلی و غیر و به نفع اطلاق عدم غیر. و الا شبیه سازی در زمان نزول آیات معنا نداشته اصلا فرض این تغییر جنسیت در اون زمان معنا نداشته اگر بخوایم بگیم آی این بحث کلیه س به این اختصاص مورد نداره این خیلی در سر داره مثلا در که بخوایم با آیات تناسب بکنیم حالا بحث تناسب واژه مثلا آی اشاره می کنم اون نمیشه پس یه بحث این که ما اگر در قبول کردیم این توضیح بدین که نگیم مثلا چون غلبه کنه آگاهان اون وازره یه واقع اجتماعیه نگیم که من متعال چطور مطلبی رو به شیطان نسبت میده که اصلا به ذهن اونها خطور نمیکنه به ذهن اونها خطور نمیکنه که مسئله به نام تغییر جنسی باشه زن مرد بشه مرد زن بشه مثلاً. اینه به ذهنشون خطور نمیکنه یا به ذهنشون خطور نمیکنه که یه حیوان متولد بشه بدون نطفه بدون نطفه به بولاغی xy بوله سولر مادیوم بهساز زن و مرد زوجین هستن. مثلا این نمیشه. الانم عسكر این زیاد از فشار فشار به حیوان اینا رو درست کردن، اعلام نمی‌کنن. شما میگین معنیشون حیوان باشه. که اون حیوان از جرای معینی داره، تایید به یک شرکتی داره که از راه نصح این از راه گوشت سعودی، سعودی که این رابطه نداره، شما از چیز دیگه باشه. مثلا یک انسان که ظاهرش انسان هم در واقع یه حیوان دیگری باشه. اصلا یکیه دیگری باشه و اون خصایص انسانی داشته باشه و این نماه ول حجیم جنایت را بشار میذاره تویره از این راهو حالا من واژه بحث این خصوص این بحث میشم شاید تو آخر بحثی اشاره بشه یک نکته این بود یک نکته دیگه این بود که من به اصطلاح بی گزرد که هم در روایات نداریم الا اون کلام شیخ چرا البته در کتور روایت روز نداریم مسند نداریم اما در کتاب ایاشی و در کتاب علی ابراهیم به عنوان روایت نیست و در کتاب مرحوم تبرسی هم بانون روایت آمده من بیرون گفتم فقط در کتاب تبرسی, تبرسی که احتمالا از تبیان گرفته باشه اما در کتاب ایاشی آمده فقط چون ایاشی چند باره ارز کردم ایشون مرد بسیار با اطلاعیه سنی هم بوده بعد شیعه شده از که پدرشون بوده یک میلیون و سی هزار درهم ترک ترکیه خیلال بوده ایشون که خریده و خانه او اصلا بانان یک مرکز علم در همون سمرغن و اونجا بوده کشت شد مشکل یاشی دور بودن او از اوساط علمی است یعنی در میدان علمی اون زمان که مثلا قوم یا کوفه یا خراسان مثلا یا بغداد نبوده ایشان تقریبا در رخصه یک استاد مرحومه به حساب کلی حساب میشه به حسبه مدرسه محمدی مسجد عیاشی مرد بسیار بزرگواری شده فوق العاده است که یکی از عجایب کار ایشان واقعاً معلومشون حسابخونه‌ای تقی کرد بسیار نسخ نفیسه و نادری داشته روایت پروان باشه که حتی بعد ها در اختیار مت شیخ دیگران هم نبوده انصافاً خیلی ثبیه اطلاع داره فوق العاده و اضافی بر او عرض کردم ایشون به خلاف شاگردش محمود کشی هم به آمده و هم به کوفه رخصه مهمش اینه بیشان عمده ایمتیازش اینه که هم مشایخ کشف و سمرغند و اون منافق رو در کرده و هم مشایخ کوفه رو در کرده و مشایخ بزرگ رو در کرده مرمون ایاشیم این جمعه ابن فضال پسر علی ابن حسن رو در کرده رجالش ازش نه رو کرده از این از اولین کتاب رجالی شیعه که ما رو در دست دارین ر اون هم ترسط کشی از استادش عیاشی نهده شده بسیار مرد پر معلوماتیه متاسفانه این کتابیشان متاسفانه به صورت به اصطلاح چیز به ما رسیده ناقص نصف کتاب کلن به ما نرسیده، نصفی دیگه شمتی رسیده یعنی کتابی که به ما رسیده نسخه ایست که بعضی از مستنفین کتاب سرز و هر کرده. خود اصل کتاب مصمد بوده هم خوبه یعنی مشایخش هم تا حد زیادی خوب هم انصافاً ایاشی در خلاق کشی موظم مشایخش مجبول و کشی ظاهرا تا قوم بیشتر نیامده به کوفه ننفته از مشایخ کوفه در عبارت کشی خبری نیست و موظم مشایخ ایشان که اون دو پنجه او استاد داره موظمشون مجبول هن. یه نسبت مثلا 3-4 درصد در مشایخ ایشان بشنسی که اونا هم اگر برداشم از طریق که ط مثل محمد بن موسی و حمزه بن موسی اون یکی از واسه شیعه و اون واسه سنی غیر از توضیح شیعه و سنی راه دیگه برامون نداره علاوه حال این دو تا با هم دیگه خیلی فرق میکنه یه بحثه تراوونی هست من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم و اسانید عیاشی فعلا در همین رجال کشی موجود ما هست اسانیدش هم خوبه هم هست که مسند درو میکنه اما این تفصیلی که الان به ما مونده اضافه بر اینکه نص قرانه نصر کتابی ایشانه اون نصره هم اصانیدش افتاده شده مثلا روحش افتاده که اسان... نه این که ایشان انداختن اون مستنفخ نسخه ای که ما رسیده نسخهی ناقصیه به هر حال شاید من در کل کتاب ایاشه همهش نگاه میکنم که شاید یکی دو سال هستند که اینا سالم موندن اون هم شاید طرف سیار کرده مثلا این مثلا خیلی مهم نیست اینا سالم داره اما خیلی کمه تا جوشینده چه جهی دیگری صحبت استریم شده می عرض میکنه بر احوادی راجع به کشی و عیاشی است که باید ان شاء الله یه جایی دیگه صحبت مفصلی میشه و لتاه در اون کتاب کشی و این اختصاری که الان در اختیار ما. مرحوم عیاشی سه تا روایت نقل کرده در ذیل آیه مبارکه این چون الان ترین مصدر ماست اول این رو متعرض میشیم حالا تقریبا با علی بن عذری الان به لحاظ مصادری که داریم در کتاب تفسیر موجود علی بن ابراهیم اما کلام خود علی بن ابراهیم هم در رابطه با مثلا ارزمیکام حالا عنوان کلام هم. داره پلیوریوم خلق الله ای امر الله به این مقدار ارقوم در کتاب علی بن ابراهیم در این تفسیری که در این کتابی که به نام تفسیر علی بن ابراهیم معروفه امر الله در تفصیل ایاشی سه تا روایت آمده من گفته گفتونم واسه نایدن در کتاب حدیث نایده بودن چون سابقا مراجع کردن نبود حالا که مراجع از ایاشی نهار بکنن سه تا روایت در کتاب ایاشی آمده این چون زرافت داره سافت داره و ما احادیث و سندن و مثلا برسیم من دیگه از کردم این امرالله یعنی الله. این مقدار تفصیلش خالی از اشکال نیست. چرا؟ امرو برخم معلومیش شیطان تو دل داخل امر برخط معلومه شیطان به صورت عالم امر تصرف بکنه ظاهر آیینی که خداوند اگر تصرفی میکنه شیطان تغییر میدی در امر تو عالم امر تصرف نمیکنه همون اخی ای امر الله آدم احتمال میده که این درست نباشه روایت از ضرر شیطان که نمیشه بلکه غیر اون نه وله امورن نه همون بر شیطان تصرف نگه من دستور میده خبی از تورش میده دستور چی میده؟ خب دستور چی میده؟ نه شیطان میتونه تغییر دستور بده نه بشر میتونه انجام ده آلمان و هیچ خود نه بشر میتونه کار بکنه نه شیطان این مسئله رو که دیروز از کردم بعدم که تحمل کردم خود من از ذهن به ذهنم آماز ما منابعه از انغالله امره تشریعی باشه نه تکلیم مألمه عالم امر امر جنا می اطمنان فليغيرن نه, نه. نه. نه, نه حکم الله مراد از امر لا اینجا ما امر به شارع ظاهرا مراد همین بود باشه این چه وضعی است بله حالا بعد روزه بعد روزه بعد, بعد من این به ذهن من اینطور بود که مراد از عالم امر یعنی عالم حکم عالم فلی و فليغيرن خلق الله یعنی خداوند چه دستور داده اینا خلاف دستور الهی امر دستور و معنای بدی هم نیست با ذهنیت اون زمان هم میخوره یعنی با اون معنایی که اول کردیم انصافاً با ذهنیت اون زمان میخوره که مراد از دست دستور باشه این در کتاب علی النبل در کتاب عیاشی ما الان سه تا روایت داریم در کتاب عیاشی دو تاش از جابره که خب مرسل الان جابر جابر بن یزید ان جابر عن ابي جعفر علیه السلام از کلی جابر میزید جوحی زمان امام ساده ایشان زمان امام ساده سال احتمال ها 128 چی دیگر گفته شده این احتمال 128ش بهتر در لیکن روایت موزن روایتی کن از باقیه در کتاب جابر انعوی جعفر دو تا تعبیر آمده به این نشون میده سری اطلاع مرحوم عیاشی بود ای دین الله آمده یه تفسیر دین الله آمده یه تفسیر داره ای امرالله به ما امر به آمده من میگم اول به ذهن خدا آمده این دیگه به ما امر به واضح شد که ما در همه تشریعیه امر و خلق نیم حالا ایشون چرا دو تاره باید نهار کرده واقعا در کتاب جابز دو تا بوده میگم مشکل کارش چون سند در اختیار ما نیست نیستون چیزیز بیرن دست ما بسته از آجابی مطلب لیکن احتمال بیدم ولی علم و امدالله شا دو نسخه از کتاب جابر بوده در یه نسخه دین الله بوده در یه نسخه امر الله به ما امر به بوده از کلم نه نه یه نامون که خب احتمال نوی که ازش ایمین نداره راسته لکن چون از کلم انصافا من جایدی زیاد دیدم ایاشی بسیار مصادر خوب و بسیار نسخ خوب و بسیار کتابهای فراوان و خوب در اختیار داشته. و به ذهن ما الان این فرضیه که احتمالشم خیلی هویه این در تفسیر جابر هست اصلا خود جابر بن یزید جوفی تفسیر داره و حالا فقط بحث این آیا واقعا تفسیر رو خودش نوشته یا روایات تفسیریشون رو جمع کرده ما یه بحثی باش روی جابر یزید جوفی در اونجا توضیحش مفصل داده شد که این تفسیر جزو کتبی بوده که حتی فیما بعد مرحومه ابو غالب زراری در اجازه خودش اوهرده پسرش و از کرده این مرحومه ابو غالب زراری فهرست بسیار خوبی داره در آخر رساله چاپ شده اون فهرست خیلی ارزش داره اون مقداری که ابو غالب متاسفانه کمه یه اجازه ایست که به پسر پسرش نوی خودش داده اونم دو ساله از کنه سابقه اینطور هست در س یه شرحالی از خاندان خود زراره نمیشته آخرش هم یک لیستی از هایی که در اختیارش بوده و اجازه بوده به پسرش و اون سند هم داره این خوبی لیست ابو غالب زراری رحمه الله یا فهرس ابو غالب زراره به تبدیل بنده این از که خبر از کتابهایی موجود میده چون کتابهایی که نجوشی نعمل میکنه در نیست موجود باشی خیلی که کلا موجود نبوده زمان و لیکن خوبی فهرست ابو غالب زراری کتاب های موجود رو با با طریق این خیلی داره. یکیشن تفسیر جابره و ابو غالب زراری حسب قائده به لحاظ زمان بعد از عیاشیه اما از ابو غالب زراری بین کوفه و بغدادیه اما خب اصلش کوفه از اما عیاشی در تمرغنده به احتمال بسیار بسیار خدیف منصفه می احتمال خدیست که این تفسیر دو, دو تفسیر یا در واقعا در یک کتاب واحد همون جا تفسیر جابر بوده و در دو نسخه بوده علایه حاله اینی که مرمون سر رو شیخ شیخی در رویان عدی جعفر و عبد الله به نظرم عدی جعفرش همین باشه به نظرم عدی جعفرش همین تفسیر جابر باشه شیخ که حسین نام تفسیر بوله تاریخش نشون داده. الان تفسیر جابر تا مدت ها موجود بوده. حالا ماهیت کتاب خیلیش برای ما روشن نباشه. احتمال بسیار بسیار قوی داره که این روایت بالا الان در کتاب عیاشی مرسل مورسیده سندش تفسیر جابر باشه. چون جابر بن یعوذ جوفی جوز خط و در خود این سنده تفسیر همین یک مشکلی داره. یک احتمال داره که مثلا دستکاری شده باشه. علایو حال این غیر از این که الان ارسال داره اون مشکل کلی خط و قلم رو داره پوش. در این است اما الان همین مسند به ما نرسیده. الان ما نمی‌دونیم چطور مسند ندیم. اما یکیش چیز دین الله یک امر الله به ما انره به روش شد. اینو که یک تفسیر. بعد از این به اصطلاح عیاشی ایشون داره بن محمد ابن یونس ان بعض اصحابه ان علی عبد الله اینجا محمد ابن یونس که احتمال قدی داره محمد ابن یونس نذر رحمان باشه آی خوبی دو محمد ظاهرا دو یکیش ممکنه اما چند یکی ایشون آورده هم محمد ابن یونس نذر رحمانه پسر یونس نذر رحمان معروف شخصیت بزرگواره تا ما خیلی ما معلومات نداری متاسفانه خیلی معلومات ما از کمه انصافا خیلی کمه و هر دیگه ایشان نیست مرد دسیار بزرگ باز بزرگان مثل ابن نعبی عمر از اش نعبو کن اتا در اون دسته یه معروف داره که ابن نعبی عمر ما رو شلده آزادن که نامشی ایر ببره تا 120 تا چوب تازیان ها خودش یه نگه نزدی بود اصدارم یه خیلی فشار شدید بود گفت که ما زیر بار زور ناجیب ال اچ برای این یه دلو مقابلم محمد بن زرهام متصل شد به نبی میگه. گویا محمد بن نبی امه موقعی که زینیا اسم شعر ناله، میگه سر کله صد بشیک فازیانه خورد که اسمره یک سالم زنده بود، صد هم سال به رو مصادره کرد. میگه تاجر بذاز، لباسوش بشود بس. الان این خیلی واشخدار رو اصلا نفیات بکنه خیلی فوق العاده باشه اینطوره. من کرارم از بعضی از این بزرگان ما خیلی بزرگ اما اون مقداری که ما مردم بزرگان خیلی کمه هستیم. در کل کسوب ورایی دارند حدیث در تحذیب بره. اصلا کلا اشیا حدیث نداریم. در فهرست اسمشون نیامد چون کتاب کتاب نداشتیم. مربوط هم در رجال است که شیخ هم در ریجا. اینکه در تهران است می‌شنویم کتاب نداشته. اما به هر حال این باید شخصیت من به نظر من که یه شخصیت خوغل بود باشه که بتونه در عالم مثال برای مثل ابن عبی عمری ظاهر بشه و او درصور بده که سر بکن و مثلا آبوری شعر نبر و شعر یه این قلعه به نظر من این طور میاد و هر حال شخصیت بزرگی بلایش بار و سغر هست و بزرگواره لیکن متاسفانه معلومات ما از ایشان فوق العاده کمه خصوصا در بخش رجال و اندیس و ظاهر حلیش نداشته پدرش هم اینطور میشه چون پدر خیلی مشخصا دیوستوناد درمون شصت پسر مثلا ولی مرد اینجا ظاهرا محمد دیونوس همونه ان بعض اصحاب از کتاب الان مرسل چون ابن ابي بود که نامش ابن ابي میکنه احتمال داره که از کتاب نبی اومد باشه احتمالاً این یک مطلب یک مطلب دیگه این که در کتاب جلد دوی تفسیر قومی در اواخر سوره ساد حسین من میگم تفسیر قومی این کتابی که اینا مشهوره در این کتاب در اواخر سوره ساد یه حدیث نه اون حدیث فرندش معتبره تا محمد میونوس معتبره اون حدیث رو اون حدیث از علی مبرهانی و از استاد روز علی از این را استاد از روش توضیح کرد من ان الله توضیح میدم که این کتابی که به نام تفسیر علی مبرهانی است این موجود که قطعا مال علی مبرهانی این که قصه‌ای که تفسیر مال علی مبرهانی نیست تو مسلّم اینی که معلومه شما بزرگ در حاشیه از ذریعه اضافه کردن در نصیح اصلی از ذریعه نبوده بعدها اضافه حاشیه مفصلی مخصوصا بعد از این دو جلدی که در نجف شد چون من چاپ این دو جلدی رو در کتابخانه ایشان دیدم شاخ متن خود ایشان با قلم قرمز رو این احادیث اشاره گذاشتن با قلم قرمز خودشون یه در اول تمام همش بود یا اول ناقص بود یه کم بود یا ناقص بود حالا تو ذهن شما 20 سال ایشان بعد اون تعلیق رو اضافه کردن تعلیق طولانی داره ایشان نظرش اینه که این فرد. چون اولی چذاب بن محمد این عباس بن محمد جامع کتاب مابین کتاب تفسیر علی بن درهیم مآید کتاب تفسیر ابو جعفر جمعه هست یه حاشیه مفصل ابوزر داره. من دیگه اون بواحثش رو اصلا نمی‌خوام خداو مراجعه خاص شد دقیق نیست مطالعاته عده‌ای هم بعد از همین مبادی ایشون, هم ایشون هم گرفتن یعنی به عنوان آخرین تحقیق نظر مرحوم اشاغوز من ان شاء الله عرض می‌کنم این ابوالقاسم عباس بن محمد بن اولاد موسی این هم جامعه کتاب نیست این اشتباهه این راوی کتاب علی بن ابراهیم برای جامعه برای مؤلف کتابه این کتاب جمع نیست، علیه تاریخ تعلیف شخص دیگری و این عباس ابن محمد راوی تفسیر علی بن ابراهیم برای این شخصه این که جامعه دو تا کتابه و خود این شخص طریق مستقلی داره به تفسیر عدل جارو که حالا ان شاء الله در در جلسه آینده توضیحا عرض میکنم اذکر کنیم که این شخصی که این کتابی نوشته مؤذم کتاب اصلا نه فقط کتاب الان من تقریبا ولیتون اول موردش رو عرض میکنم چون این دلده کتاب هست راجب تحصیل جنونیت سالاقرم صحبت کرده حالا ام تا این حد میده متعارف رو صحبت میکنم نمیخم چیلی وارد بحث بشم هرانم نمیداره ببینید این از اول تفسیر که ایشون وارد میشه به عنوان حدثنا عباس ابن محمد این تعبیر است به به اصطلاح طریق به تفسیر علی ابن ابراهیم در این که علی ابن ابراهیم تفسیری داشته و این تفسیر به اصطلاح دست اصحاب بوده مرحوم شیخ طوسی بود تاریخ داره کلینی هم داره نه اینکه برادران نوشتن که کلینی از این تفسیر نغ نکرد تفسیر علی ابراهیم نه کلینی هم داره میشه باشه حزردن در این کتاب موجود که من بعضی مسئله بشه از میکنم در این کتاب موجود تو بزقیق بکنید از اول کتاب جلد اول تا صفحه صد و دو از هیچی غیر از تفسیر علیه ازنی بردی کلم شد مال خود معلی به کتاب باشه تا صفحه صد و دو هیچی از مستر دیگه اقلا کردیم شاید هم خیلی همی مدوار اول کتاب ده همش حدثنی عبیفه قان حدثنی عبیف عبی خیال کردن مال علی تا این صفحه 102 جلد اول از این چاپ نجب چاپ دو جلدی نجب که اینای جزایری چاپ کردن این اسم کسی رو نبورده اینجا اولین سی ایشان از تفسیر اول جارو درد میکنه اینجوری هم هست حدثنا احمد ابن محمد الهمدانی این نقدر این حدثنا هم کلام علی ابن ارباره میده آیه خوبی این کلام علی ابن در کتاب مؤذنشون یکی از مشایخ علی بن ابن و احمد محمد همدانی گرفتن که برادر با ابن باشه ابن بعد از کلی وفاتش از دنیا 333 و سه وفاتش علی بن حدود اصلا یک طبقه بعد از علی بن نذری اصلا علی بن از ابوالقاسم ابن اصلا نقل نکرد اصلا علی بن کوفه اصلا نقل نکرده نه ابن بن ابی قوما آمده که علی بن اون نارض بکنه نه علی بن ابراهیم با کوفه رفته که از اون بکنه نه کبغش با مساعده اصلا تبرش هم با اون حالا انطور استاد نوشتن دیگه در اونجا از اینکه چیزی ننویسن اثر دی انجام دادن یکی از مشایخ علی بن ابراهیم و احمد نو محمد همدانی این اولین جایی که این کتاب موجود از علی بن وارد شده احمد محمد حمدانی قال حدثی جعبیر احمدالله حدث, احمد الله. حدث کثیر ابن عیاش حالا میگن در اون زمان اسم متعارف کتیر بوده به سیقه تسخیر بعدها کسی آمده کتیر ابن عیاش ان زیاده من منذر عبد جارو این غلط این زیاده من منذر همه عبد جارو به. این ان زیاده, ان زیاده منذر ان جارو ان عبد جعبیر این اولین اولیجاست بعد دیگه میاد اجازه آز بر این سند از اسناد دیگری هم نفی میکنه که یه با همین یک روز دیگه توضیح میدم مثلا ایشان در این کتابش از احمد ابن ادریس هم نفی میکنه که عمل ادریس معاصر علی بن ابراهیم ما یک دانه حدیث نداریم که علی ابن ابراهیم از احمد ابن ادریس تعریف کرده که البته نوشتن خدا تو معجزه یکی از مشکر علیه ابن و احمد ابن ابروهیم اون هم غلطه اون هم واقعیت نداره احمد ابن مؤل... استاد معلق این کتابه نه استاد علی ابن استاد معلق این کتابه اله یا این ده بفرمایید و چون تصور شده کل کتاب مال علی ابن ابروهیمه در این استخراجات تخریجاتی که شایدیشان انجام دادن من ارز کردم تحلیلات تفسیر الهی ندراهین که استاد و معتبر بودند، از جلد سوم به بعد یک و دو نداره. یک کدوم مرجع اون چقدر عادی نجدش چپ اصلی نداشته، ها اضافه کردن بلکه تحلیلات رجال الهی ندراهین و بعد تفسیر الهی ندراهین. ارثی بعد ها مانند استاد زارچارسد نوفره، پرچارسد هشت سادنو، از کامل زیاد، بعد گسرا مانند الهی ندراهین برنگشته، و الهی ندراهی معتبر بودند. این که هر کی در شصت فرز. ارز کردیم مثل این کتاب مال عریض نظرانی این بحث ها پیش بیاد اون کتاب معالف دیگری داره باید اون معالف شناخته بشه قطعا مال عریض نظرانی اه جزمن نهی که احتمال هست جزمن مال عریض نظرانی حالا ارز میکنم باشه دقیق میکنید من نمو خواستم توضیح ازیاد بارد بشم یار اون علطو اون چی شده چرا این کتاب موجود به اسم علی ابن ابراهیم افتاده به <تصفيق> این ایا سابقه داره بله اونطور هم مثلا شوکه مثلا مर्मुنساد اشتباه کنه یا صاحبها اشتباه کنه یا سابقه هستباه... سابقه نمیشه دیگه صاحب اصلا خود روایت خود علی ابن ابراهیم پیشتر دیدن ان فلا صاحب اثر میتونه یعنی صحبت ما یک سالو دو سالو مثلا 20 سالو 30 سال, و سال و... من من خود من قلیط‌ترین کتابی که دیدم حالا احتمال از این قلیطار هم باشه که هم این کتاب موجود که قطعاً مال علی ابن میز نیست به علی ابن رایم نصفت دادن حسنی سلیمان هلی شاگردش ایده اول قسمان ساله هستاد و خورده یه صورت زیروز نیست یعنی این یک سوال قبل از بهاد به دیر دیری دیر سال قبل از بهاد موچنه شد که هم این کتاب موجود با همین شکل موجود رو به علی ابن رایم نصفت دادن در همین کتاب مختصر بسار درجات این آقای حسن سلیمان هیدی از همین کتاب نرم میگه در همین احادیث، در همین احادیث علی ابن و به اسم علی ابن در از یک این اشتباه نشه، بده خود نشه، مثلا حس قصدی اشتباهه. این سوال 600 ساله، سوال 500 ساله، سوال یک سال، دو سال این کتاب موجود و همین شکل موجود به اسم تفسیر علی ابن ابی درست این نیست ایشون ما مال جامعه کتابه اما خب متوجه بقیه نشه کتاب فقط کتاب دو تا کتابی که در زمینه کتابی عمو جالو نه این کتاب زیاده غیر از دو تاست قراتن پیشوره تجرید نوابان خیلی داره تصریح از علی خیلی داره اینقدر که دو تا داشته باشه به خوب دقت کنید در آخر سوره صاد داره که حدسن و احمد بن ادریس این از بزرگانه ان احمد بن محمد بن عیسی این اشعری باشه ام محمد میورس ان رجل انا ابي عبد الله قال في قوله تعالی انظرني الى يوم يبعثون اون هم در یک کلام ادلیسه خودم من احتمال میدم این هم دلیل اون بوده چون اون که مال الان که داریم انظرني الى يوم يبعثون چون ظاهر چیزی روز قیامت از اون صالح اون یومی که براش شیطانو و بدن هر در اون تا روزی که پیمنبرد داره شیطان سر شیطان در بیتون مردست میبارن بلا برای اینجوره احتمال اگر درست باشه این حدیثی که موجود است در مرسلن در کتاب عیاشی سندش پیدا میشه خوشش اونجا هم همینجوره محمد امرج انرجمن علی عبدالله اینجا هم همینطوره محمد ریونوس هم بعض اطابی هم علی عبدالله اگر این درست باشه این رو روون واسه بکنی این روایت عیاشی که فعلا سند نداره سند پیدا میکنه اگه این مطلب اینا درست باشه و اون نسخه من احتمال میدم مشکل داشته باشه به نظرم احمد بن محمد یعنی ابن ابي عمر محمد بن احتمال اونجا باشه و لذا به احتمال بسیار قوی روایت اصل درست حسابی داشته سند موجودش صحیحه الان فقط نظر مؤلف این کتاب این سند موجود صحیحه احتمالا تنه درست داشه مجموعه آیاتی که در شعن ابلیسه امام تخصیل <متصفيق> <تصفيق> <سلام> الله دید حالا این نکتر ارزام در اونجا هم داره ای امرالله در ما امره بیم اونجا دین الله نداره اونجا هم امرالله در ما امره بیم داره. این محلی شده دیگر تا بقیه درست رو فرده انجام دید حالالله <تصفيق>